اینجاست که اون خیشگاری من اون وظیفه من به عنوان بهترین برموانه به زرتشتی میاد که اوکی من راه درست رو میدانم چیست و اون راهو میرم اما میدونم که این آمیزش نادرست هم وجود داره و باید, باید باش مبارزه کنم حالا این مبارزه رو هرکی یه شکلی میبینه یکی مبارزش به شکل آگاهی پراکندنه یکی مبارزهش به شکل شمشیر کشیدنه یکی مبارزهش به شک شهر افروختنه خب ما میگیم که بهترین راشت آگاهی دادن افروختن نور دانش آگاهیست. آگاهی است گاهی وقت‌ها بسیار دشواره شوربختانه خب انسان راستای جهات هم دشواره یک انسانی که بزرگ شده و انسان به از یکی سال ده سالگی، هفت سالگی به بالا خیلی از افکار آدم شکل میگیره. خیلی از مردم امروز روی کره زمین در یک سری سیستم های باوری از کودکی دکتر میشن یا تلغین میشن و اونا باهاشون بزرگ میشه و دگرگون کردن اینا بسیار مشکله. اینا هست با ما هست. خب اینجاست که خرد میاد وسط. نقش خرد بگرد راه رو پیدا کن. ولی باز برمیاده به اینجا که اول از خود در آغاز کن راهش همین حالا برای مای که به هر حال یک همبودگای داریم به نام همبودگای زرتشتی خب احتمالا شاید پرستش هایی بعدی شاید به اینجا برسیم که خب حالا ما زرتشتیان چه کنیم به کجا رسیدیم میخوای بذاریم خودت بپرستیم تا من پار ساخته همین بحثه موبه جان که ما به حال دو تا جامعه داریم جامعه زرتشتی که به حال از سنتی از گذشته زرتشتی بودیم و یه جامعه نو زرتشتی که به ما میخواد به پیوندی مثل مسی رود و خروشان ولی متأسفانه این چیزایی که من در این چند ساله دیدم در خارج از کشور یه نوع گاردی هست حالا بین جامعه زرتشتی و نو و برزند بین خود آدم ها اول میخواییم این مسئله رو روشیابی کنیم که در خود جامعه یعنی اول بپردازیم به خود جامعه خودمون یعنی خود جامعه زرتشان سنتی که چرا ما اون چیز گاهانی رو اون فلسفه گاهانی که ما باید بهش پایبند باشیم نیستیم آیا بعضی میگن نه ما تحت شرایط جامعه مثلا امریکا قرار میگیم جامعه مثلا اینجوری هست ما همینجوری میشیم <متحد> <متحد> یعنی من بحث فلسفه آفتاب پرستی هست ولی من به از درست نیستش حالا چگونه یعنی اول بحث از اینجا شروع کنیم که چگونه ما باید بر اساس اشار رفتار بکنیم حالا هر جای دنیا که زندگی می کنیم و چجوری خودمون باید تطبیق بدیم بر اساس اون باورمندی دین بهی و بعد چگونه بتونیم بر دیگران تاثیر بگذاریم و بعد حالا می رسیم به بحث رابطه با خب <متحد> این نخواست این که از چندین فراپرس یا مسئله میشه گفته بود یکی این که کلا جامعه ما زرتشتیان خب حالا در ایران یا در هند هر کدوم به شکل خودمون چگونه ما در از این 1300 سال رسیدیم به امروز که اولا بظ نظر شمار کوچک شدیم. و بعد حالا هر کلوممون به عنوان یه زرتشتی به راستی وقتی به درونمون بری بتونی این بکشی بیرون چگونه میاندیشیم و چگونه رفتار و کردار می کنیم این ها خودشو داره و بعد خب این نام رو اون هست چون جردر در جرد پدر در پدر مادر در مادر خب ما اونهایی که زرتشتی زاده هستیم رو میخوام بگم اینکه حالا اون زرتشتی که امروز از این نجا بسیار پشت پشت تا به امروز رسیدیم اگر بخوام بگم به راستی چقدر زرتشتی هستیم هر کس باید از خودش بپرسه به هر کس هر کسی دیگه ای در این جهان برای, برای خودش کهاریم و خودش رو میکنه از اون چیزی که بهش باور داره اما این از یک مسئله. مسئله دیگر این که بعد از اینکه این, این رویدادها در جهان امروز و در سرزمین ما رویداد و پناکندگی های ما در کشورهای گوناگون خب سبب شده که اولا تیکه تیکه بشیم پاره به پاره و خود اون یک سری هم پرسش ها و هم چالش های جدیدی رو پیش رویمون گذاشته که خالد چکا کنیم؟ خب دیده مثلا بود تاریخی زمان درازی هم نیست که بتونه آدم به هر حال راچه پیدا کنه سازندگی بکنه حالا از ایناش بگذریم نخواستیم که میخوام بگم که دوباره خودمون رو بشناسیم بسنده نکنیم به این که من چون از قدر مادری زرتشتی زاده شدم و نام زرتوشتی رومه پس من بسیار تمام کمالات انسانی درم نه این چیزی نیست خودمون رو پول نزنیم. خودمون رو دوباره بشناسیم. ولی خوشبختانه داره میخوام بگم از یک سو. به خاطر این باورها، ریشه ها و بنیانها که درمون همه هست. این داستان راستی، حالا از همه چیزهای دیگش بگذریم در ما از،, از هر فرزند زرتشتی که در این خانواده زرتشتی زاده میشه تا اونجا که من میدونم، تو ما که همشه بود این داستان دروغ نگو، دروغ و به صراح همیشه رو گوش ما میکن راست بگو، دروغ نگو هم که راست بگو، دروغ نگو خودش در واقع سازنده ی خیلی مسائل از تو انسان خوشبختانه میخوام بگن در ایشه ها نه فقط در مزارد تشته خیلی از انسان ها بگم تو دروژه آدم ها در این خود میکنم این از این، اما بعد خب اون رو عنوان یک پایه گذاشت یک پلتفرم اولیه و بعد بیشتر روش سوا شد بیشتر در شناخت خود حرکت کرد شناخت وقتی میگم هم هم خود دین و آینه برصفهش نمیدونم تمام چیزهایی که ریشه و بعد ها و سنتها که اونم در جایگاه خودش به درستی شناسایی کرد تاریخمون رو تا اونجا که میتونیم شناسایی کنیم بشناسیم یک آگاهی فراگیر همه دادیم حالا شاید بگن، آقا همه که نمیتونن بدن همه دانشاره بیا آموزشا ما زندگیونو زندگی اوکی اا آره درسته میفهمم حالا یکی مثل مرد یا خیلی کسای دیگه در راه افتادیم که رفتیم توش پژوهش کردیم خوندیم بیشتر دانستیم. خب خیلی هم شرایط زندگیشون این بهشون نمیده یا اصلا دنبالش نیستن هیچ برتری هم این به آل یا انبرین ندارد تنها برتری که ما بر اساس دیدگاه خودمون جهان بینی خودمون داریم همون است که در این کلمات ما میبینیم برتری کسی بر دیگری در چیست در راستی است و درستی حالا این راستی درستی رو یک بینش درونی که یکی داره یا یکی از راه دانش و پژوهش به اینجا رسیده ولی این دانش و پژوهش هم باید درونی بشه باید به شکل بینش در بیاد تا به شکل رفتار خودش و به شکل بیرون نشون بده بنابراین اگه بخوام بازم سادهش کنیم آقا به نظر من خیلی ساده ساده ساده برمیگرده به اینکه راست بگو از این گویش راست حالا راستی و دروغ معناش خیلی بزرگیه یعنی تو همه چی میشه اینو گسترش داد. چه کسی دروغ نمیگه کسی دروغ نمیگه که یک با خودش مشکل نداشته باشه دو با دیگری مشکل نداشته باشه دروغ تظاهر کردنه به چند دلیل یکی اینکه میخواد یکی چیزی رو به دست بیاره که از راه های دیگه نمیتونه یکی میخواد یکی چیزی رو از دست نده از ترس. یکی از ترس به دست نیوردن یکی از ترس از دست دادن داید. یعنی بعضی وقت بخواد بریمون تو حالا چی به ترسه؟ فلان نعنی خیلی محصول دیگه میاد داست. بعد باید میگرم سادش میکنم هنگامی که من در درون خودم به یگانگی رسیده باشم این یگانگی هستی اصل اول زردوشتی بودنه نه یک تاشناسی یک خدایی نارم زادم فیلان من بهش میگم مم. یگانگی هستی. همونی که اینتگریشن بشتیم. حالا هر چیست مو خواهد وقتی که من درونم یگانه باشه. یگانه یعنی چی؟ یعنی تضاد نداشته باشم درونم. یعنی اینکه با خودم به بالانس به تعادل درونی رسیده باشم. خود به خود این از همینجا ما آغاز کنی این مثل درست خشت اوله. خشت اوله درست بذار. پرمیش شبا شباش میاد که اگر دیگه دیگه نمیخواد وارد مسائل خیلی پیچیده یه نمیدونم روانشناسی انسانی و جامعه شناسی از این باشیم حالا این از اینکه چیکار کنیم تو فلسفه شدیم بود که خب باهرم زرتوش چیکار کنیم که اشا یعنی چی اشا اگر الان از اون تعریف های کلاسیک و کتابیش است بشنویم بگذرین قانونمندی هستی و کهکشان و از جهان برین تا جهان زیرین همینو جایگاه داره راستش یکی از واجه‌هایی که من می‌تونم جایگزین تمام اینا بکنم برای من برمیگرده به همون واژه‌ی تراز یا اندازه یا در زبان‌های دیگر تعادل هارمونی و بالانس اندازه تراز هارمونی و بالانس در من کی به وجود میاد باز گفتم وقتی که من تظاهر نداشته باشم وقتی که نیروهای درونی که ما با همون چهار نیرو در واقع بریم، اینها با هم یه آمیزش درستی داشته باشند و در تعادل با هم باشن. این تعادل رو من با این با اینجاست که هم فهم درست اندازه این اندازه درونی با اندازه بیرونی با هم, هم. من چطوری با جامعه درونم با اندازه باشم در شناخت جایگاه خودم و در شناخت جایگاه اطرافیانم ممکن کش و قوس به وجود بیاد ولی اگه دو طرف آگاه باشند یک جایی با هم به تعادل باراس میسن همجوری بزرگش کن، یه جامعه متعادل در وجه وجود میاد حالا هرکس، هر کدوم از این اندام، از اندازه خودش به بیرون زیاد خواه بشه همه اون سیستم رو به هم میزنه همه اونو به هم اونو باید بشونمی سر جاش حالا این نشاندن سر جاش یه زمانی با مهر و محبته یه زمانی هم باید با قانونمندی باشه اون دیگه قانون رو برای همین داری اگه باشه هر کس هر که خودش درش میکارد رفتار کنه و اندازه نگه داره نداره خب همه چی به هم نیست پس در توادل، اشا یعنی توادل اشا یعنی اندازه راستی و درستی, و درستی و مثلا همونه و این پایه از جدرم، این دیره که اون مثلا اون خیمه است که ما بهش میگیم اشا دیره که درست بزن، خشت درست بزن بقیه به اون اون که روش ساخته میشم محکم قرص استوار باقیم حالا همینه ما چجوری باید اینو رو یک فرهنگ در چون همان یه بحثی که در بخصان خادراز کشور مطرح میشه بحث آموزش جوانان و نسل جوانی هستش که در خارج بزرگ میشن تحبیت پیدا میکنن در یک فرهنگ غیر ایرانی روش پیدا میکنن حالا در آمریکا، در پاکستان، در هرج دنیا هست. اینها رو ما به چه صورت یعنی یا چه روشی از چه متودولوژی باید استفاده کنیم؟ این رو اولا ما بیایم به فرزندان خودمون آموزش بدیم. نسل جوان ما تربیت پیدا بکنه و بعد این رو چجوری بتونیم بر دیگران تأثیر بگذاریم؟ به فرض مثلا فرزند من که در یه مدرسه امریکایی داره درس میخونه یا فرزند هر کس دیگه ای اون با یه متودی داره آموزش میده که بر اساس فرهنگ امریکا من اگه بخوام بیام فرهنگ ایرانی رو به اون آموزش بدم یه چیز شاد سر 80 درجه زعاویه داشته باشه و این بچه دوچار سر برای من بازش کنید. چیه وقتی میگی برای نمونه فرزند شما با فرهنگ آمریکایی که میگی چیه که در برابرش فرهنگ ایرانی رو فرنگ امریکایی خواهد مثلا یه سری مثلاً ما سنت ها داریم مثلا ما میگیم که حالا مثلا یه سری قانون های برا خود سری ها داریم مثلا میگیم که تا 18 سالگی حالا امریکایی میگن تا 18 سالگی مثلا بایستی فرزند در خانواد رو باید به کار بکن و جدا بشه مثلا ما در فرنگ ایرانی بودش مثلا فرزند شد تا سی سالگی هم در خانه میموند و با پدر مادر زندگی میکن این مثلا یه سری تضادها، سری تضاد, تضاد ها سر آموزشه. مثلا در امریکا آموزش که مثلا به جوان داده میشه در رابطه با مسائل فرهنگی حالا اونا خودتون بیشتر دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم. با فرهنگ ما در تضاده. من مثلا استینی که مو جان چجوری تضادها رو بشه در واقع هم ابینگ برج و کمرنگش کرد که یک حالا یه پسر یا دختر زرتشتی در مخصم در سنینه اساس 10 تا 14 یا 15 سالگی یه سنینه هستش که شخصیت فرد شکل میگیره دوچار تناقض نشه و بعد این رو به صورت یک فرهنگ بتونیم فرهنگ فرهنگی جاش بندازیم که این میتود مثلا یه میتود مناسبی است برای آموزش به نصد جوان و این رو بتونیم فرهنگ سازی بکنیم ببینید آه... وقتی ما میگیم فرهنگ، این فرهنگ یه باجه یعنی شامل خیلی چیزها میشه اما اینو یه خودم جداش کنم از آن چیزی که ما داریم در موردش به عنوان دین بهی گفت میزنیم هرچند که دین و فرهنگ و جوانبینین همه در همند. ولی هم. ما حالا اومدیم به شما هر بودیم شما در حالا امریکا یکی در یک کشور اروپایی یکی در جای دیگه حال با شاید رفتارها ها و برخوردار های بزرگتر میره و از خانواد جدا میشه در شما میگید در فرهنگ مقدا 30 یا ای ببینید این این موضوع بیشتر از اینکه که فرهنگی باشه که در واقع رفتار دار هست که بر اساس شرایط زندگی اینگونه شده در ای که انسان ها امنیت حالا بخوایم بگیم کاری و شغلی و اجتماعی اصول نسبی داشته باشند دقیقه همچین ای جوان ایرده ای ساله یا برحال در سنی که برحال اون رسیده به سن رسیدگی دیگه یا پختگی یا اونو خاله چش رو بذاریم نظر قواین جامعه، حالا ما قدیم ها می گفتن 15 ساله، امروز اونجا میگن ده 18 ساله خب، مسئول زندگی خودش، پیشکاری خودش حالا اگه این, جا... این جوان بتونه توی جامعه کار مناسب گیر بیاره و داشته باشه و بتونه مثلاً حالا یه خون پنه یه پیدا کنه بره زندگی کنه حتما که نبه تو خونه پدر بدر تا سی سالگی بمونه حالا ما میگیم خب قدمش روی چشم بمانه خب یه واقع درس میکنه پول نداره بره نمیدونم حالا خانه بگیره. خب بمانه تا کارش تمومش درست تمومش بعد هر وقت دوستاش بره این به نظر من فرهنگ نیست یعنی باز میگم ربطی به دین و اینا نداره یا اخلاق حتی نداره چرا یه چیزایی از اخلاقی مراسمشون میداریم روابط آزاد مثلا پسر دفتر خب، این مسئله هیچ کدوم از این فرهنگها ها و جوامعی که در نور در جمعه هست شاید به شکل صد درصد نتونسته حلش بکنه شاید این نیازی هم به حد کردن به اون معنا نداشته باشه یه چالشی هست که انواره باش روبرو هستیم یک جامعه میاد با فشاری به نام دین و نمیدونم اخلاق و حالا حتی رو بذارید فشار بیش اصد میاد به زور مثلا میگیره این دو جس رو اصلا جدا میکنه از اون با میبینیم تو رای دیگه جامعه میزنه بیرون از یک سو باز گذاشته حالا ما باش میگیم بی بند و باری یعنی باز از اون اندازه زدن بیرون خب اون هم میبینیم یه نتراج دیگری با خودش به بار میاده که هم اون سازنده نیست هم این سازنده نیست. پس برای این باز برمیگردیم به اینجا به اون تواده ولی خب آره دشواره شما اگر فرزند شما در اون کشور میره توی مدرسه ای که همه دورورش دارن بر اساس یک تراکنش یا یک کنش و که تو اون فرهنگ جا افتاده زندگی میکنن، حالا تو فرزند رو بیار تو خونه بگی نه این کار نباید بکنی، دوباره فرداش میره بیرون میبینه همه چه مثلا هم کراسی های خودش همسانه خودش خب این دشواره به خاطر همون ت... یکی از راهاش اینه که به هر حال این جوامع کوچک کوچکی به وجود میان، حالا ازش رو بذاریم دینی، ازش رو بذاریم گروه ها. اگر مثلا زرد تشتی ها خب باید انجاملی داریم یا جایگاهی داریم که حالا مثلا آخر هفته میان اونجا یا هر موقعی که بتونن خب اونجا به هر حال به شکل های مختلف که اونا دیگه مثال مثل آموزش پرورشی و پداگوگی و تربیت فرزندان و همه اینا ببینیون میاد که باید با دیانش و خیلیت رو اینا بیایی توش و بعد اونها رو به شکل حالا دیگه به چه شکلی آموزش میدیم بستگی به سن ولی خب راحل این نیست که بشین یه سری مثلا نیایش ها رو فقط اینا بشینن حفظ کنن خب اگه تو تاعش ها رو حفظ کردید تو فکر خب ما دیگه زرتوشیه خوبم بدون اینکه مثلا اصلا بتونید بفهمید در واقع که اون اشایی که میخونی تو اشم بوو یعنی چی خب میگیم این آغازشه اوکی از اونجا آغاز میشه بعد بعدی رو به شکل کارگاهی و به شکل‌های دیگه‌ای در واقع این داستان رو نهادینه بکنه در رفتارها که اونا یه بحث ما نیست چون خیلی بحث دراز و طولانی و باید کارشناسان در واقع بشیند با اون صحبت کنند. اگه از من بپرسی تمام این کلاس ها رو که کنار یه چوب میذارم اون وسط روی چیزی میگم برو روی این واستا ببین تعادلت به هم میخور یا نه؟ از اونجا آغاز میکنم بعد بهش میگم چرا تعادلت به هم خورد؟ بذارم خودش جواب بده خود. بعد این آروم آروم باز کنم بستگی به سن و سال اون مخاطبم بکشونمش به جاهایی که بتونه دیگاه از این زنده نگاه کنه از اونجا برم اشا رو پیدا کنه از اشا پل بزنم به دینه بهی نه اینکه یک سری حالا نوشته ها و چیزهای کتابی رو بشینه حفظ کنه مثل مدرسی که می رفتیم یا امروز میان می هنوز میشن نیست حفظ می کنن خودی که یا با تقلب میان، نمیدونم، این تقلب کردن در فرهنگ ما دیرینه ای داره برای که دانش نهادینه نمیشه. با تقلب میمیم مدرک میگیریم، با تقلب میریم کار پیدا کنیم، دسته رو همدیگه کلا میذاریم، هم جامعه همونم، هم من دارم جامعه کلی رو میگم. ولی امیدوارم تونسته باشم محضور اگه میخوای وارد جزئیات این مسائل بشیم بزنیم در یک گفتوای دیگ است چون الان وقت شما رو میگیریم و به جان رضا هم خیلی گفتگوی پرباری بود حالا اگه بخوایم در پایین به جمع برسیم که بخوایم اگه بخوایم شاخص گذاری بکنیم بگیم اگه شاخص اینه به من یه بهتین واقعی و این شاخص قرار بدیم بخوایم شما یه حالا قانون که نه بخوایم یه شاخصی رو در واقع اموان بکنیم به نظر شما چی باید بگیم بقنه یه کسی که با بهترین واقعی باشه و ارگو باشه مثلا آه. با توجه به اون چیزهایی که تا به حال گفتم پاسخش ساده نیست در کنار اینکه میتونه ساده باشه ملاند بقیه زندگی بس که یک داره چوبی یا میتونه خیلی ساده باشه همه یا میتونه خبشی اینقدر پیچیده باشه که وقتی آغاز میکنی توی این چیدگی هم میافتی، نمیفهمیم از کجا آغاز کرد؟ ده. اگه بخوام اگه بهدین واقعی آن است که از پنج بار در روز نماز بخواند نمیدونم نماسهاشو حفظ باشه، هر روز صد و ترش باشه نمیدونم این چیزها رو اگر شاخص ببینیم، میتونیم ببینیم، میتونه میتونه اگه درست انجام بشه، نتیجه خوب داشته باشه میتونه تظاهر باشه، خب؟ درست. یا ای که، خب، بهتین خوب درست آن است که آزاد به کسی نرسونه، دروغ نگه، نمیدونم به کسی آسیب نرسونه محیط زیست را آسیب نرسونه و سود رسان باشه، خب، اینا سازنده باشه اینا هم شاید یک پارامتر بهتری باشند در گفته بود کردم ولی من باز بعد میگم به اونجا که راست و درست باشه راستی باز میگم راستی خب میگم خیلی بزرگه ولی برای من بر میگرده باز به همون آرامشی که از شادی در میاد و این آرامش شادی از یگانگی من میاد و این یگانگی رو من میتونم به تیگران به گسترش و اون بقیهش دیگه روی این ساخته میشه. تظاهر نباید امروزه امروز صحبت از، خب حالا اون یه بحث دیگری است که خب، همچنان با ما هست، مسئله نوتیشان، نوت زرتشتیان یا اون کسانی که میگن که ما امروز هم میخوایم زرتشتی باشیم به شکلهای مختلف، بعد میگن اون خیلی مسئله باز گونه به گنوه دیگری پیچیده دیگر میشنند اگه بارد اون بشیم. خب این هنوز یه پرسش هست که آیا زردوشتی بودنیست؟ شدنیست؟ آدم چگونه میتونه زرتشتی بشه؟ چگونه بعد میتونه زرتشتی خوب باشه؟ آیا آیا دروغ یا دروغ مسئله آمیز، فلان، دروغ سفید؟ آیا جایگاهی نداره؟ یعنی میتونه هر کدوم از اینا شبه باید یه چیزی بداری در باقابلش پرسش دیگه بیاد که با هم زمانی آدم توش میمونه که پاسخ درستش چی باشه همه چی هم پاسخ صد درصد روشن نداره اونجاست که خرت میاد وسط همه چی سیاه و سفید نیست تو این زمین که آدم بگه خب اون سفیده من این که بعد میگذنم میسیاس میذنم بود خیلی زمینه خاکستری داریم این وسط اتفاقا یک کار اینه که بره دو تا چیزی که فقط یه خود با هم فاصله دارم بتونی برگذینه، یک اینجوری نیست ها. چالش های زیادی رو ما هستش ولی پاسخ ساده من برمیگرده باز تکرار در تکرار میشه من اگر بخوایم آری اگر بخوایم از ده فرمان شروع کنیم به 20 فرمان و سی فرمان برسیم، خیلی بتونیم فرمان بذاریم دروغ نگو، آزار نرسان، نمیدونم، پشت سر کسی حرف نزن. تهمت نزن، نه فلان خب کلی چیزا ساده آدم میتونه به عنوان شعار مطرح کنه ولی آیا واقعا در زندگی روزمره اینا انجام میشه همه همه میتونن این کار رو بهتین واقعی آن هست که دستکم بدونه که راه درست چیست و بدونه که هدف اونجاست حالا دستکم ما هدف رو ببینم ساختن یک جهان آباد آزاد برای همه آفریدگان روی زمین و شاد خب یک چیز خیلی بزرگیه آره دست کم من این ایدئال داشته باشم بعد آروم آروم بیاد. این خوردش کنم برسم به خودم خب من در کجای این راه هستم من چگونه میتونم به این راه کمک کنم بقیهش دیگه روز به روز آدم میشینه انتخاب میکنه برمیگزینه از بین چیزهای کوچیک تا چیزهای بزرگ اما خدخ رو دارم میدینم و, و حالا میشینم نیایشم میکنم مشینم می کشنیمو میبندم مشینم می تمرکزم میکنم با طبیعتم سعی میکنم نزدیک باشم دور نمیشم به انسان‌های دیگه کمک می‌کنم، به جانوران کمک می‌کنم، به طبیعت کمک می‌کنم و و اون چیزایی که میتونه من در پیوند نزدیکتر با ریشه‌ها هم نگه دارم آرامش و اون اندازهای در اون نگه می‌دارم وقتی که خودم احساس آرامش کردم، بعد یک قدم می‌ذارم جلوتر. این فرایند تنقالی روانی، این فرایند که ما بش می‌گیم امشست‌بندان اون سه چهار تا مرحله اول رو باید برم تا در خودم برسم به اون سپنتار میتی به اون چیزی که حالا یک آرامش ای دارم که در این آرامش میتونم افساینده باشم از اون به بعد میتونم حالا بیام رو جامعه اگه میخوام در بیرون از خودم جامعه جامعهان تأثیر بذارم دست کم باید به نوعی از اون مرحله رسیده باشم یکی از مشکلات ما اینه که خیلی از افراد جامعه، از مدارش گرفته تا کسانی که میان و هی میخوان با شکلهای مختلفی رو دیگران تأثیر بذارن، خودشون مشکل دارن خودشون نفهمیدن کی هستن زندگی چیز خودشون نمیسیدن اون آرامش سازنده بعد میان واسه خودشون نمیدونم کلی ادعا دارن و نمیدونم رو تا همینجوری هی دور و تسلسل باعته. در واقع نادرست به شکلی مختلفی در جامعه هستش که میبینیم امروز دنیایی که داریم خود خودت میده این چه خبره تلویزیون واکن رسانه ها رو, رو از صبح تو شب داریم می‌شنید چه خبر دقیقا مو بده. چالش اصلی الان هم همینه حالا ما دیگه بخوایم بس هم بندی بکنیم که نو زرتوشانی یعنی که وارد جامعه ما میشن یعنی پس مثلا اینکه حالا کانورت میکنن بر عنوانی یه سه تعو دارند جامعه حالا یه آرمان در خودشون بوده یا دنبال یه سری ها هستن بهش نمی‌رسن و یا یه سری توقعاتی هستش که از زرتشتی زاده‌ها دارم توقعات رو در روابط با اونها حالا چه در داخل ایران چه در خارج و بعضیشون به سرخوردگی میرسن بعضیشون به گل‌گذاری می‌پردازن که مثلا ما اون تصوراتی که داشتیم نیستش حالا این همون بحثی که شما میگین بایستی اگر یک کسی در واقع به دنبال نیست و به دنبال زفتشتی بودن و زفتشتی زیستن هستش همون حرف شماست که بایستی به هفت همشاست بپردازه و در واقع همون پله به پله بره جلو مثل اون هفت شهر که بعدا در فرصفه سهر وردی میاد حالا به نوعی میگیم حکمت اشراق هستش در واقع باید اون آرمان رو اون هدف رو برای خودش تعیین بکنه تا بیاد بر به نوعی مثلا هدف خودش رو در جامعه ببینه. حالا اون هم شاید یه بحث جامعه شناسی و رمان شناسی بخواد ولی همین می ببینم که شما اگه بخواین توصیه به یه نوع ذرتشتی بکنید که حالا یه سری آرمان ها برای خودش قبلا تعریف کرده توصیه اول چی هست و بعد چه توصیه میکنید برای هدف گذاری تا برای اینکه از این سرخوردگیها در واقع بهش به اون سرخوردگی نرسه بله، میکنم یه اگه برحال اون سخنی که من میتونم بگم به سوی همه حالا چه زرتشتی چه حالا نو زرتشتی که ما حالا داریم نداریم این هم یه سخنیست حالا ما در درون خودمون به آن دست کم کسانی که در پدرانشان یک روزی حال زرتشتی بودن اون همه بازگشتند به گونه خب کسانی که نبودند دمونام میشه کنون رو همه در واقع خب میتونیم نام زرتشتی یا بهدین روش بذاریم و از دید من اگه بخوایم اینال با واجگان خطاب کنیم واجگانی که هم درست باشه و هم در واقع همگانی تر باشه باز همون دین بهی یا بهدین یا نیک دینی یا نیک بینی چون در واقع دین همون بینش است. و این نیکبینی و نیکبینشی میتونه در هر انسانی باشه. حتما نباید نمیدونم به یک مندیت ویژه یا رنگی ویژه ی اینا نداریم. برای همه میتونه باشه. هلکس که درست ببیند هلکس که درست رفتار کنند در زندگی و سود همگان را در نظر داشته باشد. این یک بهتین است. یک نیکبین و نیکتین است. کسانی هم که زرتشتیان رو عنوان یک یا دین زرتشتی و دین بهی رو به یک ایدئال میبینند حالا به هر دلیلی دلیلها گوناگون از کجا اومدن و به اینجا رسیدن خودشون رو نگاه کنند میدانم که آنها هم مانند خود تازه شما و ما که خودمون زرتشتی هستیم باز از خود رو که زرتشتی بودن یعنی چی؟ تازه اونا میان از ما میپرسند شما برید از ده نفر زرتشتی دیگر از من پرسید اینا رو از خودتان برست برو از ده تا پیست تا دیگرم بپرس که نظر شما چی؟ مجموعه این نظرها رو جمع کنیم ببینید چیه برای یکی ممکنه بگی آها این مثلا ایشون این عوستار از حفظ نیست پس بنابراین ایشون نمیتونه زرتشتی خوبی باشه یا ایشون این گره دوم مثلا بد بست پس اینهاست؟ به دلیل دلیلی خوب بودن؟ نه اینها نیست اینها باز میگن اینها ابزار هستند ما اصل رو نبا با فرق کنیم نیایشها ها و تمام این چیزهایی که سنت ها و آینها برخواسته از یک اصل هستند اون رو با این یکی ندانیم هرچند که به هم مرتبط هستن و به هم پیوند دارن کسانی که از جامعه زرتشتی به دلال گناه بون. که این جامعه کوچک پراکنده که به راستی توانایی های ما بسیار مرزین هست، محدود هست نداریم، نه امکان مالی داریم نه امکان به اون صورت مردمی بزرگ داریم که بتونیم یک سری بسیار اینفرانسرکچر یک زیربناهای دست کم اجتماعی بسازیم از جایی و مکانی گرفته تا مساله دیگه که بتونیم پاسخگو باشیم از جاهای گوناگون جهان تماس میگیرند که جان ما مثلا در فلانجا هستیم الان کلی اینجا حالا ایرانی یا غیره هستن که میخوان بپیوندند اینجا کسی نیست خب نیست نیستیم چند سال مگه ما این امکان داشتیم که یه خورده تازه به خودمون بیان میخواد به ولی هنوز اون جامعه کنونی جهانی زرد داشتی هم نداره اون در واقع اگه اسمش بذاریم مرکزی یا مدیریت یا یگانگی زمان نداشتیم و امکان نداشتیم که بتونیم درست یه چیزایی رو راهکاره رو پیدا کنیم اما از سوی دیگه باز میگم اصول اصول جهانی است اص. اون اصول اصول, اصول اص... آنیست. اونا هست. مال همه هم هست. حالا اون گروه نوکیش، نو زرتشتی یا بازگشته، اگر در ایران حالا هر جایی نتونستن وارد جامعه زرتشتی باشن، جامعه خودشونو رو بسوزن، گروه های خودشون درست کنن. راهنما پیش روشونه. در اونا میتونیم تا اونجای که بتونین کمک کنیم. از اون راه کتاب آلهه شروع که میتونین مدد پرسه گفتگوی ما های میاد، شروع کنه حالا حتی از آینه هاش ده. از راه ها جشنه رو میگیرن بعد از جشنه از بالا یعنی برن پایین حالا این جشن برای چیه به دلال چیه بعد از اون یه بره ب... پده بره پایین تر برسن به اون اصول. آرام آرام کار فرهنگی همیشه میگن آرامه یعنی یک شادو یه چیز واقعا باید بینش سازی بشه باید فرهنگ سازی بشه این فرهنگ سازی, فرهنگ سازی با یک پشتو دو پشت هم نمیشه تازه در آغاز کنیم. پس برمیگردم به اینجا. اوکی. اول بپذیرم که همه چی یه شب اتفاق رو گفته. اما من اون هدفو دوست دارم. هر کسی گنگ به من بگه که تو در راه نمیتونی بیای، میگم باش. اگر من با شما نمیتونم پشت میز بشینم، من پشت میز خودم میشینم. دو نفر دیگه هم ممکنه میام پشت میز من بشینم. اما من میدونم که من و شما با هم راه اون یکیه حتی شاید شما امروز نبینی اینو یا من نتونم همه اون ببینم باشه اگر من باور دارم به اون راه به اون هدف به دنبالمون میرم یک روز ما در یه جایی به هم خواهیم رسید. پس اونایی که نمیتونن به تعلیم گروه تو جامعه خروه های خودشونو بسازن نه با یک برخورده بعد و به اصطلاح متقاسمانه یا دشمنانه که چون مثلا این گروه کوچک زرداشی که اونجاست من در خودش رفته، پس من شروع کنم با اونا مخالفت کردن اونا را بدونم شروع کنم پویسترشون مثلا این بر بار چیز بگم نه اینو بفهمم که شاید اونا ها اما هنوز ندارم تا دلال کنها آمادگی رو در خودشون احساس آمادگی رو نمیکنه که یه نفر هنوش خودشون رو باید بشناسن تا یه نفر دیگه بیاد تو رو ولی در اونجای راه با هم خواهیم رسید وقتی که به نظر کیفی این آمادگی رو پیدا کرده باشیم که بیاییم و یکانه بشیم با امید بسیار با آینده با خوشتکار و با خوشبینی برای اینکه بنیانمون، بنیانهای امید دهنده و خوشبین کننده هستن. اونها رو بکنیم ملکه ذهنمون و با اونا به پیش بریم. پیروز خواهیم بود. پیروز باشید. برای شما و همه خیمدگاه یرامی که الان سرشون درد گرفته آرزوی سال خوبی رو دارم. امید دارم و میدانم که آینده بهتر خواهد بود هرچند که امروز شاید به نظر نیاد ولی این آینده به رفتار و کردار من و شما همین امروز بسته می بنابراین آگاهیم رو بیشتر کنیم بینشمون رو درست بگردانیم بینشمون رو به به گردانیم به منش باشیم به گفتار باشیم و به کردار باشیم تا به راه درست بریم و به امید خدا جهان رو که میخوایم خودمون و بعد فرزندانمون درش زندگی کنند جوری بسازیم که دستکم از وجدان خودمون شهدمنده نواشیم بساعآلی موبه جان وقت گرانبار شما هم گرفتیم بسیار گفتگوی پرباری بود به امیدان که در آینده هم یه همچین سلسله پرسشها رو داشته باشیم چون واقعا پرسش ها زیاد هست چالشها بسیار و شاید این <تصفح> نیازمند یک زمان دیگه هم برای گفتگوی دیگری با خدا در داشته باشه. بسیار سپاسگزارم دارم. به جان از اینکه وقتتون در اخترمان ما دادید دادین که سال بسیار پربار و نیکو داشته باشید. و همجور سال نو رو مجددن به شما و خانواده گرامه تبریک میگه. سپاسگزارم برای شما همینطور شما در کارات پیروز و باشید جونرد و شما شما جبال دیگه در برابر ما. شما جوان ها باید بسازیدین رو و ما در کنارتون هستیم شما بشین بازوی ما و ما میشیم بازوی اون یکی بازوتون دست هم پیش بده. سایه شما که باید سر ما باشه تا بتونیم با امید خدا بریم جلو با امید او شب و روزت خوش و سابق خوب خوش باشم خدا نگهدار خدا نگهدار افاید خدا, نگهتار. خدا, نگهتار. خدا, نگهتار. خدا نگهتار.